ملیک زمان نمیدانست کدام از دو خبر را زودتر به منازه سلطنه بدهد اول خبر خوب را یا ابتدا خبر بد را تا نتیجه فاجعه بار نشود اگر با خبر خوش شروع می کرد محتمل بود خواهرش آنقدرها از شنیدن خبر ناخوش برا نشود از طرفی اگر خبر ناگوار را زودتر می داد، امکان داشت خبر گوارای پوشبندش درد من از سلطنه را التیام ببخشد. والا درد من در تمام مدتی که غرغر تلفن را میشنید تا مرکز جواب بدهد و بعد قار و مرکز را تا خط به بخانه منزلت سلطنه وصل شود، چنان ذهنش متوجه تقدم و تاخر دادن اخبار بود که وقتی بالاخره ملوک از آن طرف جواب داد، ملیو زمان صدرا نشناخته یک خورد. اصلا انتظار شنیدن صدایی را نداشت تا بلند شدن صدای منزد و سلطنه هم باز زمانی طولانی فرصت بود با این حال هنوز ملی و زمان تصمیم نگرفته بود گفتگو را با کدام خبر شروع کند ملی توی من که نفس ندارم حرف بزن خواهد تا من نفسم جا بیاد مریضه گفت خسته نباشی من از زجان شنیدن مشغول خونه تکونی بودی یعنی ملوک گفت رفتی بیرونی خوشم همه رو میذاشتی یه بار که عید دیگه خواهر کار دوباره چرا؟ من از که کم کم تنفسش به حال عادی برمیگشت گفت حالا کوتا بهار هنوز تابستون تموم نیست نه بابا خونه تکونی نبود یه چهار تا از رختای آقا تو بیرونی ولو بود اونا رو گذاشتم لای نفتالین تو سندو خونه. ملی زمان گفت خب همین دیگه چهار سبای دیگه باز باد باز همه رو در بیاری باد بدی. چشم هم بزنی روز از نو روزی از نو. راستی خواهد کش دو تیکه از رختای مرحوم آغار بدی به مشباقه. والا سباب دنیا و آخرت داره. اینقدرش دلش محسی خواهد کبابه. منازان سطنه نیز داشت حرف ملی زمان به آخر برستد صدا را به قرر و لند بلند کرد. خوشم باشه ملی دیگه چی؟ یه باریکی که مشباقه بشه سرداری پوش. خورده خورده فرق بین نوکر از آقا نمیشه داد. هرچی پیرن بیع و بیسراستین بود با چند تا عرقگیر و دو دوتا شبگلا و یه زیر پشم خالص کار هندوستون که آقا پا نکرده بود همه شد سرمه مشباقه چطور پوستین و عبای آستر خزشم هم بخشش کنم و والا ملی تو گا نسخه ها واسه آدم میپیچی که اگه تمام محله و آدم زیر و زبر کنی تو قوتی هیچ عدالی پیدا میشه ملی زمان پشیمان از زبان درازی به هنگامش گفت نخواهر نه والله نظرم اینا نبود مخصوصا هم همون پیرن و کلاهی بود که بهش دیدی من که خبر نداشتم تو دادی نه همونا که دادی از سرش میاد از پاش در میده. نه نه ولی میدانست که دیگر ممکن نیست بتواند اخبار را حال به هر ترتیب که باشد به من از از طریق تلفن بده. بنابراین اضافه کرد، حالا من تو فکر بودم که تو رو بکشونم این ورا بشنیم دو به دو از الونی چاق کنیم و خود حرف نشخار کنیم برای همین تلفن کردم مش بفر سر گزارر برای یه که خبر کنه پاش بی اینجا. در صدای من هنوز رسوبات خشم بود. من کی فراغ دارم. مگه میتونم از اینجا تکم بخورم؟ هزاری گرفتاری یه بدبختی سرم ریخته کی دارم که به برسه؟ مگه خودم؟ کس نخوارد پشت من خانم جان جز ناخن انگشت من معیزه اون گفت واب بسم الله. حالا این چه بلاکاریه که نمیتونه یه دو روز صبر کنه و بلنش رو بیا ما شمسی جان که هست ماشاءالله خب به اون مورات میرسه دیگه اگر دو خواهر رو به روی هم نشسته بودند منظر سلطنه اعتراضش را به این اظهار نظر ملیح و زمان با چفت کردن لب و خیره کردن نگاه و جنباندن نشان میداد ولی از طریق تلفنی این با کنش ها بی حاصل بود بنابراین منظر زبان گشود. شمسی ملیح تو فالله حرفا میزنی که مرغ رو خنده میندازه، این دست را مباد به آن دست احتیاج اون که خونه است که به کار من برسه باز امروز از ازان صبح پا پاشوده رفته لالزار از با بزک دوزک بخره اینگار میخواد بشه عروس اتابک نه پسر اتابک نخواستیم نخواستین بالا اگه شوهری پیدکت بود اقلن همقدر شعن و مکنت خودش حالا یه حرفی هشکی نه نایب عبدالله یلا لاغباخ موش تو جیبش قاب میریزه اگه سر تا پاش و عرزم میریزی دونش پایین نمیاده از اون ننه همین ببه جان هم دیگه چه انتظاری وقتی خانم های چریه دقل نازد دیوونش بخوابه فقط چون مردی که پاش زمینه سرش آسمون بچه که پس بهتر از نایب عبدالله عذاب در نمیاد ولی زمان از یک لسه نفس تازه کردن منظور سرطنه استفاده کرد و گفت خو تو چرا امروز مثل ابن سر توپت پای خواهر اخوار نزن تو فسر بالاست مرد هرچی باشه دامادت خیشی به خوشی سودا به رزا جبر و زور که در نیون نبوده و بالاخره خودتم با این نروسی سر موافقت نشون دادی اگه من از آساتان باز پرید و حرف ملی زمان و گفت منور منور من منو رو گیر کرد گفت از طرف من و قرار گذاشته اخ کنونم بی سر و سداد خونه خودش میگیره قسمم داد که حرفشو زمین نندازم مخالفت نکنم وگرنه من کی میخواستم در واقع منظر سلطنه از سرگرفتن روسی دخترش با نایب عبدالله تایدل تا ناراضی نبود. هرچی باشد از یللی تللی زدن ترشیدن در این منزل که بهتر است. از خودش سر و زندگی پیدا می کند ولو محقر. تا عبد که نمی شود در دامن مادر ماند. هم که از در و دیوار نریخته از که آدم بگوید این نشده دیگه. دیگر. به علاوه وقتی کسی شوهر بیچیز می کند، چشمش خور به کم میسازد همه اینها را منی زمان به حدس و گمان میدانست، انقدر با طبیعت خواهرش آشنا بود که از میان شکایتش رضایتش را هم میخاند، پس گذاشت تا او همه جوش و جلایش را بزند و بخارش سر برود بعد گفت، خب، حالا همه این حرفا بر این که اینجا، من تک و تن افتادم این گوشه، خونه این فخری که وای وای نگو، اصلا نمیتونم قدم توش بذارم، جای خالی اونو شازده را ابدا نمیتونم ببینم گفتم تو این دنیا یه خواهری داریم شاید یه امشب مون اسمون بشه اونم ایشون. خب باشه خواهر من از دو که انبانه قرولندش خالی شده بود ناگهان ها نرب شد و گفت مگه که من بعد از آقا تنها نیستم مری جان شرا بایا جان عزیزت برواق خواه که مادر امروز به فکر بودم بعد از کارام خبرت کنم یا ملوک و بفرستم دنبالت که پاشو بیای اینجا تو پیش جلد و چابکی ماشالله را افتادن برات کاری نداره که پاشو بیا ملی پاشو من زمان گفت من اگه حالا بیام برگشتنم میفته به قیه بشم نه خوهر بمونه یه وقت دیگه و میدانست حالا دیگر مندزه سطنه دست بردار نیست و او را به اصرار به منزلش خواهد کشان و برای دادن این دو خبر چه فرق میان خانه او و خانه خواهرش. منازارت از نگو که میزاره تو شب برگردی چهار از دست رفته بیای بعدم برگردی خوشم باشه من یه آتیش می آی بیا شبم همینجا بمون بلاخره درسته که منور دول عقد کنون خونش گذاشته ولی ما همچی دست رو دست نذاشتیم که بلاخره هزار یه کار گردن ماست منم که میدونی از این کار ازم ساخته نیست تو باید خالگی کنی دیگه بعدم بیا من با سلام مشورت کنم برای این جزی ما بچه ها ببینم بلاخره بفروشیم،, بفروشیم زوجه عبدالله خان نایه فعلا به فروش رزا داده تا فردا نظرش چی باشی ملی زمان باخنده خدای شد من تلفون کردم تو یادوزمت ازاری کار با من داری منظر بسیار خوف اصرار بیشه از این نمیشه من را افتدم بگو مشباقه از اون چایی دپش علم کنه تا من برسم ولی زمان معطل نشد که که از نوکرها درشک صدا کند تلگراف دامادش و کاغذ خوانداداش را در کیف دستیش گذاشت و چادرش را در کشید و به کوچه رفت. خبر خوب تلگراف شاهزاده بود و خبر بد نامه منیف دیوان، تلگراف هاوی پیام ملا بود از غزوین که مراحل آخر عروسی عباسخان و دختر سکین خانم را وعده می داد و نامه از اروپ رسیده بود و خبر آمدن خوانداداش را به تهران شامل بود. ملی زمان صد البته مشتاق دیدن برادر بود. آن هم بعد از این همه سال اما چه کند بامون از زه سلطنه و اکسال او؟ کی می تواند حریف جار جنجالش بشود؟ و چطور می شود در مدت اقامت منیف دیوان منازا سلطنه را واداشت که قیل و غال در هر مجمع به پا نکند آن هم جلوی سر و همسر و خودی و بیگانه و کس و ناکس در حضور زن فرنگی منیف دیوان دیگر چه آبرویی به جا میماند حقیقت این بود که بار گناهان منیف دیوان سبکتر از آن بود که منازا موت می کرد. عمده ترین معصیتش این بود که در شکرابه میان پدر و خواهر جانب پدر را گرفته بود و بعد از مرگ پدر که از قاره قدیم اسم قاره جدید کرده بود و به تجارت موفق دست زده بود، سهمی برای خواهران غائل نشده بود. چه توقع از داشت بعد از اون همه بگو مگو و تمرکاری و کلوفگوی منظر. ولی مگر میشد از منیفتیوان در حضور منظر سلطنه دفاع کرد و یا قصور خودش را در قبال اقوام گوش کرد و یا تحریفاتش را از واقعیت به رویش آورد و ویلا شد ویلا. تمام راه را ملی زمان با این افکار دست به گریبان بود و وقتی جلوی در خانه منظر سلطنه از درشک پیاده شد به قدر ارزنی از تزلزل و نگرانی کاسته نشده بود. منازل سلطانه چند بار مشباغر را طلبید ولی جوابی نگرفت تا بالاخره سرکله زهرا سلطان در درگاه اتاق پیدا شد این مشباغر ولنگار کجاست زهرا سلطان من که خناق گرفتم بس داد دادم زهرا سلطان گفت چه کنم والا ما بیرونی که آمدیم تو حیط پایین الف میشید کجا غیب من نمیدونم منم موندم دست ملک و شما جای بره عقب چی رفته اونم پیداش نیست. من قوت ندارم و دیگه برنج جخیز کرده رو از جاش تکم بدم ملوک هم نیستیش من از درستان پسید این رفته کوچه این پتیاره رو بعد نغره داغ کرد تا اینقدر ول نچره زهر سلطان گفت چه از کنم ولو بلکم رفته پی نون بلکم جفتیشون پا مشق عمیخان چه از خود چه از کنم من از درستانی یه طویلی زهر سلطان دادا اضافه کرد حالا قبلستونی رفتن پیدا میشه. برای دیدی. زهر سلطان گفت آ خوده از پلو با گوشت ماهیچه خورما کشمش و پیازداخش و بیشتر کن خانم ملی زمانم شام اینجاست یه خاگینه هم علاوه کنیم شان بعد نیست زهر سلطان با درد استخوانی که داشت از هر کار اضافی روگردان بود و از وقتی پسرش به ده برگشته بود و خانم هم شاگرد دیگری نگرفته بود حتی شستن ظرفها را بیشتر اوقات به بهانههای مختلف بر گردن ملوک میگذاشت پاشنای به و خوی منزه سلطانه و به امید فرار از طبخ غذای دیگر گفت چن تا گل شامی لبه است یه کاسم آش ساک خانم علی خدمتکار چی بخور نیست والله اونم جفته شما یه دو قشق که بخوره دیگه خاکی نمیخواد خواهی کار خوند جان منزه نگاه بی اختیار زهرا سلطان را به هیئت پرگوشت خودش ندیده گرفت و فقط گفت آ خود دانی زهر سلطان رسیدی درست کن نه نه حالا برو مش من اینجا مخوان. کاری بود، فرمایشی داشتید. مشباقه در آستانه در ایستاده بود و صورتش چون لبو سرخ بود و در شرشمه های بگود نشستهش چنان برقی بود که تب زده به نظر می آمد. اتا کجای مرد نحسابی؟ من نگه خونه رو به قبله بشم کسی نیست تو خاشقاب ها به توربک بریزه. مالوک کدام گوریه حالا بی بل زمان میرسه با دهن خشک بشینه یا همون چایی جوشیده بعد از نهارو بخوره به این کلی قربیل بند بگو سماور دوباره آتیش کنه چایی تازه دم کنه چندتا حقه مربا بذاره پای بسات چایی آخر شبم با خودت کار دارم بعد اینکه درار کلون کردی بیا ببینم مشباغر صدای منذر سلطان را میشنید اما زهر کلامش در او موثر نبود سرخشتر از این حرفا بود فقط گفت چشم خانم، بروی چشم منو خدمتت ارزی داشتم همون شب که اومدم ملوک داره یه آتشگردون ذغال میگردونه برای سماور سلطان گفت تقیه در اومد مشبقه با خانم علی خانوم باشه مشبقه رو به در رفت زهرا سلطان رو به مطبخ و ملوک سماور جوشان را با سینی و جام روی میز گذاشت چند قاشق چای مخلوط با گلبرگ یاس را در قودی ریخت رویش آب بس آن را بر سماور استوار کرد و دمکنی را سر قوری کشید و تا ملی زمان به اتاق برسد حقه های مربای به و کدو و آلبالو هم سر میز بود ملی زمان در حقه مربای کدو را برداشت و بوی هل و شهت را با نفسی عمیق و لذتی تمام بالا کشید و گفت این دست پخته کیه؟ اون از با سر به ملو که مشغول چیدن استکان و نلبکی بود اشاره کد و گفت کارین آیشه لک و ریز ریز خندید ملوکم لب خندریز و پیچوتا به رقصان دست و بدن به ملیزمون گفت قابل شمار نداره ملی خانم جان ناقابله ملی زمان یک تکه مربا را با سر دو انگشت گرفت و به دهان برد و در حال جویدن گفت این بلا دختر چیکار میکنه این کدوش مثل شیشه شفاف میشه انگار بلوره تو تیزاب میذاره ولی منتظر جواب نبود و تکی دوم را قبل از به دهان گذاشتند یک لحظه در هواگه رنگش رو ببین رنگ بهشته بالا. ملوک بعد از ریختن چای از اتاق بیرون رفت و دو خواهر را تنها گذاشت. ملی زمان منزد سلطنه با دو سه استکان اول از سرما و گرما گفتند. از مستجر خانه پامنار، فروش که سرای درواز دولت و سرقفلی همم کنج بازار و از مجلس زیافت دختر فلان و ختن سوران پسر به بهمان، تا رسیدن به فرو دوله ولی زمان پسید شنیدی که داستانشو منزاسرتنی گفت فوت شوهرشو اون که حالا چند وقت با هم رفتیم ختم په پس دیگوش کن که عجایب هکایتیه فو این قصه رو فردا بر سر بام میزنن از هم الان نقل هر مجلس و نقل هر محفه خبر داری که معتمد خاقان لقب لقب شوهر فلو گرفت شد قوام دوله وقتی لقب اون مرحوم گرفت حواست که زنشم بگیره از فروغ دوله انکار از معتمد خاقان اسرا تا اقوط زهیر دوله خانمون برخلاف میلش برای آقا عقد اون از دستانه بس این همه میگفت من الا و للا بعد از اون مرحوم دیگه شوهر نمیکنم بازار گرمی بود ملیزمان زمان گفت نه کجای کاری ده گوش کن شبیه که معتمد سروریشو خذاب ببند و بر رو رو صفا میده و میره که عروس رو ببره خونه بهش میگن چه نشستی که خانم تش بردن فرنگستون تن منظر از جنبیدن مان دستش جلوی دهان مشت شد و زبانش بی اختیار و با حیرت کن ای دلی خافل ای چتو با کی بگو ببینم ملیزمان زمان مشعوف از صورت حرفش گفت. و برادر و عیال برادر که بار سفر برای فرنگ بسته بودن و عقبتر برسند این نشاست تا چای ششم کماکان صحبت فروغ دوله بود که امیر خان رسید و بعد از او شمس و بالاخره عباس خان و تا آن لحظه ملی زمان هنوز هیچ کدام از دو خبر را به منظور سلطان نداده بود عباس خان به محض ورود از ملی زمان پرسید از ها چه خبر خال ملی فخی و رسیدن به پاییش یا نه تکلیف روشن شد مر زمان خود را ناگزیر دید که با خبر خوب شروع کند و گفت به پاریس که نه هنوز خاله چند اما از قذبیم برامون خبرهای خوش داده خاله و به عباس خان چشمک زد منظور سلطن و عباس خان هر دو با هم شروع به صحبت کردن منظور سلطن به اعتراض و پچه زودتر نگفتی و عباس با بیتا بگه پس کوی نروش خانو مر این زمان خندید و گفت خوب کردم بعد بگم. آروز خانمم تو راهه. آخه میدونی که رودبار سیل اومده، راها بند. عباس رکو یود پای به ماچی. که بگین تو کویه لوت طوفان شده. ولی زمان گفت: نه. جانم، رودبار به شما خیلی مربوطه. مادر زن اونجا هم علائقی داره، رفته سر باغ زیتونش عزیزم. این سکین خانم دست کم نگیر. یه وقتی رو کبیر لوت هم یه چیزایی داشت. شمس سلطنه با بالا دادن ابرو و نازو کردن پشت چش پسی تو کویر لود چیزی هم هست مگه همه خمو بله سراب همه خندیدند هنوز مناظره سلطنه با کلافگی جمع و ساکت یه تاق مولد بدیم ما دو کلمه حرف بزنیم پسی قصیه باغ زیتون ملی؟ شازده از اونجاها چه خبری داده ملی زمان گفت فخری و شازده مله ساله و قزوین دیدن مناظره با شیخ خوب پس گیرش آوردن بالاخره بله دیدکش مولا ساله گفته که همه مقدمات فراهم شده توافق حاصل علت تاخیر بارون و سیل بوده چون دست برقص و سکین خانم با اهل منزل تشریف بودن به املاک در رودبار و به خاطر رابندون به قضی مراجعه نفر بودند مولا هم بر اینکه بیشتر از این عمل خیر عقب نیفته خودش ازم رودبار شد دیگه تاشش به هم بزنی بادا بادا بادایش حالا مبارک بادا حالا مشتلقه خالی چی عباس یکبار یک عباس خان با خنده از جا بلند شد سر خالهش را بوسید و منظر سطحانی پرسید دیگه از کاروبارش و مال چیز چیزی دیگه نگفتن ملی؟ ملی زمان گفت نه تو خودت گفتی که غازین چند در دکون داره چند باب خونه و زراعت و مستقلات از منقولات هم که جواهر و تاقشال و خالی کرمون فراوون حالا معلوم شده تو رودبار یه چیزهای هست دیگه خدا بده ورکت من از باز خنده های ریزش رو شروع کرد گفت نه فالله بس چیزی نپرسیدم اما خوب خبر داشته باشه خوبه همه پرسید خال ملی فخری جون اینا نگفتن اسم زن عباس چیه عباس هم دنبال حرف رو گرفت ای یاسی اسم عیوش چیه من از گفت ما فعلا برایش یک کنیه لقب شوقعزم در نظر گرفتیم ولی هیچ محلوم نیست اصلا با این شاخ و این دوره این کارا باشه. شم سلسنه با سرکشی گفت رفی نظامی عبدالله خان که مسجله هیچ عرفم نداره خال منور علی اکبر خان هر دو قولشو به من دادن مخصود چیه این شاه این ماشالله به ما که رسید آسمون تبید ملی زمان از واهمه این که مباحث دیگر فضای زلال فعلی را قبل از اعلام خبر دوم دردالود کند و فرصت فوت شود گفت رستی از خانداداش هم یه رسیده من از صدر تقویم براشو توم به توم این خوانده داشت. چه خبری خبر مرگش بیا من زمان با باز گفتیم ما نگو دیگه خواهرای یعنی چه خودت الحمدلله شکر خدا به همه خواسته هات داری میرسی خوب نیست در عین سعادت هم ذلت حبوش غریبه رو بخواد. چه برسه برادر بدنی و سلبی خودش هیش خوب که هنوز خاندایی برایش نقطه اتکایی بود گرچه بعد از نامزدیش با عبدالله خان کمتر به منیف دیوان در رویاهایش جا دنباله حرف خالش را خطاب به مادر گرفت آ واقعا شما شجر از نمک گرفتین چه حرف های آدم تو این خونه میشنوه فقط لایق دهن نانخانی شله پس خال ملی بگین چه خبری از خان رسیده خوش ایشالله. ملی زمان که از یافتن همدست شاد بود با شیرین گفت آره والله خوش خاله‌جان اینطور بوشمنا که خان در این سفر میاد این طرف عباسخان گفت زن فهنگیش با خوش می آیه؟ گفت یه عکسی خاندادش هم کسی به ما نشون داده چه شکلی دا این دایی مونیف؟ من از به دلیل تربی که از شنیدن خبر اول پیدا کرده بود، گوشمش از شنیدن خبر اومده منیف دیوان از آن چه انتظار میرفت رفت خفیفتر بود. به علاوه دنیا را چه دیده ای؟ شاید برادر با پشیمانی و برای جبران مافات به این سفر می آمد. محوظا از زبان درازی شمسلطنه لبهای من سلطنه بر هم چفت بود و تکانهایی تنش در زمان مکالمات بین فرزندان و خواهرش تند و تند در شده بود. ناگهان از سؤال امیرخان تکانی به خود داد و گفت بوزنی نویسک و پهنان منظرک خوب شد، می‌خواد چه شکلی باشه گوش بگیرن. و وقتی همه از این توصیف مسخره بغقغه افتادند، من از هم جنبیدنها را آرام تر کرد و گره ابروان را گشود.